حدیث 22 هزارت چلتا حدیث دو کلمه ای فرمودی رسول الله صلی الله علیه و سلم السفل و ارفق السفل اسفل پاینه و ارفق یعنی بهتره ایلا منظور چیه این حدیث کجا اومده سبب ورودش چیه سبب ورود حدیث اینکه ابو ایوب انصاری وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه هجرت کردن منزلش دو طبق بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم پایین را انتخاب کردن ابو ایوب اومد نظر رسول الله صاحب زنم گفت یا رسول الله ما آبی چیزی برزی و خوشایند نباشه که ما بالا باشیم و تو پایین باشی شما بیایید بالا ما میایم پایین رسول الله صلی الله علیه و وسلم و صرف المدن السفلى ارفق سفل یعنی پایین بهتر برکی بهتره یعنی منظور رسول برای چیه؟ مثلا این بهتری بر برای... به چه قصدی گفتن بهتری رسول خدا برای خودش نگفتن چون آدم وقتی که پایین مسلمان سر صدا از بالا میاد خب یک سری اذیت هست که اون شخص پایین باید تحمل بکنه برخلاف اون شخصی که بالا نشسته آزادتره برای خودش خب اینجا رسول الله صلی اینو انتخاب کردن نه برای خودش بلکه برای مهمانان خودش وقت ره که رسول صلی الله علیه و سلم مفرمایم من کنا یومن بالله والیوم الآخر فليکرم جاربت و بعد در حدیث میگم من کنا یومن بالله والیوم الآخر فليکرم ضایفه کسی که ایمان به الله و رزو آخرت ای که اولیش همسویاش اذیتش نکنه و دومی هم اینکه اکرام بکنه مهمان خودش را اولین اکرام من همیشه گفتم بازم اینجا میگم اولین اکرام با اون سخنه بفرمایید خوشحال میشیم بیاید لطف میکنید و الى آخر از اون صحبتایی ای که دل اون مهمان خوش بشه دل اون مهمان خوش بشه این از ایمان ما به الله و روز آخرته ما فراموش نکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلام اولین مهمان نواز الا ما میتونیم بگیم اولین کسی که مهمان را در خانه خودش جا داد و پذیرایی از مهمان کرد اول من اقر الضیف ابراهیم علیه السلام اولین کسی که پذیرایی از مهمان کرد و مهمان را تکریم کرد ابراهیم بود علیه السلام و صفاتی که عمومینین خدیجه رضی الله عنها یاد میکنه. از رسول الله صلی الله و که از کوه برگشته بود داشت می‌لرزید چی گفت انک لا تصل الرحم و تقر یعنی تو از مهمانات پذیرایی میکنی و این از خصال نیک از صفات نیکه که شهرت توصیه بهش داشته و اونم بحث اکرام مهمان و ضیف که انسان همون طور که گفتم در حدیث اومده همونطور که انسان حواسش با جمع باشه نسبت به همسایش علی جا را ثم در همونطور که به همسایش مثل خانه خودش نگاه بکنه خانه همسایش همون هم توجه خاصی نسبت به مهمان‌های خودش داشته باشه ما هر حالا آداب و احکامی داره بحث مهمان هست آدم که نباید تکلف بکنه و الی آخر که در سخن گفتن در ارفاق به مهمان در خوشی و خوشگویی به مهمان اونجا دیگه نه. اونجا دیگه انسان باید تکلف کن. نگه که از عادت ما نیست. نگه که از رفتار ما نیست و الى آخری نه. اونجا دیگه وظیفه هست که خوشرو باشیم وظیفه ما هست که خوش سخم باشیم و درست از مهمان من پذیرایی کنیم.